أعوذ بالله من الشيطان الرسول والسلام jednak なら الالمين صلى الله على نفعل رسول الله الطيبين الطاهرين المحسومين سولي على سيدنا رسول الله الطيبين خام بگین خودون شخصش بیاد. ارحم نابر که kia ارحم راحمین. از شد راجع به بحث روایات بود که ما استدلال شده برای حجیت خبر واه و برای تودیع مطلب این که کتابی محل مراجعه حضرات باشه غالبا از روی کتاب استاد از مصباح و روصول نسبتا موجزم هست و جمع از اینجا متعرض میشه پس کنم که ایشون فرمودن به این که در صفحه 222 از این جد دوی مصباح که به حسب این ترتیب شماره 47 ایشون دیگه چون مطالب راضی به خبر و مفصل خوندیم متعرض تلماتی ایشان و جوابی که ممکن است از اونها داده باشه ایشون هم از جمله از دلیه برکت جد خبر روایات کسیره است و قدرته به شیخ علاق تواعف اربن اولا اخبار علاجیه اخبار الاجیه بچی استدالش و استاد این جنوبشون ادال لعبه انه حجیق الاخبار فی نفسه ها کانت مفروغ انها اندال این موضع بین و انما توقفو ان العمل من جهت المعارضه فسر و انه حکمان و من الواضح حیط مورد الاخبار, الاخبار الاجیه علی خبرین المفروغ سدوره ما باید مراد خبر قطعی نباشه چون در خدم خبر قطعی تاروز نیست برد نوشتم و چون معنی ناظره و هم ظاهر من مثل قولی یهتی انکم خبران متعارضان قول و سوال ان مشکوکی صدور به اینکه تعارض به حضورت قطعی پی نفس بقید از کلم یهتی خبران متعارضان این نفس خبران متعارضان فقط توی یه روایت ای است که مربوط است به کتاب حوال الله عالی. اوالالله آزی این روایت رو از طریق علامه مرفوعاً از زراب رفع و بایدازراب در قرن ده هم ایشون در قرن اواخر نه هم و ده هم ایشون نقل کردن نه هم برشد. از شد که دادن مرانه غیر از اینکه اشکالات پراروانی حالا به خود صاحب رحوالی هست چین چی چیزی وجود نداره یعنی غیر از ایشان هم کسی نقل نکرده منحصه به ایشان در کتب علامه هم نیست جای دیگه هم نیست احتمالا یکی ای بوده مخدود به چیزی بوده ایشون دیده خیار کرده بیدید مثلا روایتیست مخصوصا که ایشان وضع علمیش خیلی واضح نیست احتمالا مجموعهی که اوبرده خیلی نیست، و در بحث تا الان متعارف از مثلا نسبت بین روایت دراره این و احوالی رو با مقبوله عمره و هنظره بیانیون ما در بحث تعارض گفتیم این بحث درست نیست روایت اصلا ثابت بلمره و ارزش بحث علمی نداره اینه که استاد پرمزن مثل قولیه که خبران متعارضان این تنها حدیثیست که توش کلمه متعارضان داره مثلا کلمه تعارض از که اینجا روایت و این اطلاقی که این هم یکی اجات زد و حدیفتی این اصطلاق متاخری خب این راجعه به اون قسمت اما این که وجه استدلال و اخبار علاجیه که حجیت مفروغ و نهان نمیخواست کشون از این راه وارد بشن ما کراراً عرض کردیم اصلا تا آرز فره حجیت تعبودیه این توضیحش رو کراراً عرض کردیم بعضی وقتا در کلماتی این ها که خیلی واضح نیست ببینید اصولا وقتی ما میگیم تا که ما غالب حجیت تحبودی باشیم چرا؟ چون نعمه تا اینه که دو خبر ما داریم که هر دو واجد شرایط حجیت هست یعنی لغولت معارض حجت هست چون اگه این حجت باشه که ایس به تا من مندارم. پس تا همیشه فرق حجیت تحبودی یعنی این خبر پی نفسه حجست و این خبر هم پی نفسه و اما اگر ما قائل به حجیت تعبودی نشدیم قائل شدیم به حجیت و قغالایی خواهی نخواهی تا و بگیم قغالا در خبری که وصول و اطمینان دارن که وصول و, و اطمینان به دو خبر که نمیشه تا آرز به این داره هست اما تا آرز مسلح نیست بلکه یکیشون حجته لا لاحجته ما با شواهدی تشریف میدیم کدام هجده کدام هجد نیست بعد از اعمال شواهد و حصول وصول حصول به یکیشون اون میشه هجد اون, می هجد. اون می که اون دیگم که هجد نیست میشه شو. شواهد هیچ کدومیشه میشه تایید کنه بعد میگردیم به مطلب دیگری این هم همه چیزی که از اون به عهده ما برگردیم و اما اگر قائل به حجیت اصلا نشدیم مثل محلوم سید موتزا چون که واضحه از اون نیست که بحث بشه که اون مثل امروز سید موتزا وصور و رو به حکم میگیره و اگر برفر هم تو خبری باشه که با هم منافع دارن ما به وصور به حکم پیدا نمیم فید بگر بعد از پس اون فرزشی در راه ده به حکم نداره فی به عبارت تا آرز فر این است که ما میعیار بدیم برای حجیه مثلا بگیم خبر سره دو تا خبر سره داریم میشه تا خبر عرض دو تا خبر عرض داریم مثلا وجود رواید در کتب اول یه رواید در کافی داریم یه رواید تو فقیل داریم با هم متعاده این میشه تا آرز فردش اینه. و اما اگر گفتیم حجیه تو اقلاعی وصول ما باید اول اون تخالف و منافاتی که به این درات حل بکنیم تا به وصوب برسیم وقتی به وصوب برسیم اون حجتونه پس ما همه همینطور که مردم استاد اشاره فرمان بهتنیلاش اینه اگر ما روایاتی در حل تا داشته باشیم این روایات دلازه رو جد تعبدی میکنه رفت میکنیم خود تعبد محسوسا اگر ترجیح روش باشه چون ترجیح بدونید که کل واحد پی نفس باشه معقول نیست و ما توضیحات ارض کریم اصلا روایات علاقی ما و قرآن دلالت برگوه تا آرز نمیکنه. کنه دلالت روایات ما مفادش اشتباه خجد حجت بلا خجده و تمیز خجده نمید میگه اینم خجد اونم حجت. شما مثلا در مصاحبه دو تا حجت فرض هیچ فرض استنبهات العلاجیه مفاضلش این نیست حالا من یه نمونه شهادتن عرض می‌کنم از امیرالمؤمنین صادق علیه السلام در باره تعارض راوی پیغمبر سوال شده حضرت فرمود این صحوری داره یعنی ال علنی داره نه سوالی یکیش این که بعضی از دروغه گفتن ببینید که امیرالمؤمنین میگه این خبر حجت اونم حجت حالا چیکار بکنه میفرمایید که دروغه حال پیغمبرین چیزی شما پیغمبره یک قسمش درور گفت یک قسمش اشتباه شنیده سامع درست نشیده اگر بشن بگرد تا اشتباه کردی پیغمبر اینجور نبرمودن ماها بودیم این پیغمبره برمیگرد اشتباه کرده. این بسطا نهی که این حجتون هم حجت قسم ثباه میشنم این رو بپنیم به حاطر این بزنستان این چست از پیغمبر سید شنیده برسته نمیدونه سال پنجم اون نصر شده سال ششم اون نصر ببینده قرار بکنم این مفاد مفاد تا نیست این مفاد مفاد ترجیم نیست امام داره رویشه باید میکنه یا دروغ گفته یا اشتباه کرده یا ناسخ و منسخ تشتیز نداره این اسمش نمیزنه تا آرز. امام داره پنجمی خجه داره خجه نمیده و روایاتی که از خود علمه آمده حالا شرحش نشده در محل خودش به نظر من توجهی نشده یعنی اون نکته اساسی کلام ذرافت کلام دقت نشده ببین خود شما اگر به شما بگن یک منبر رفتی نوارش موجوده چین چیزی گفتیم یک منبر دیگر رفتی نوارش موجود چین چیزی بود آیا شما خودتون برای کلام خودتون مثلا میگن حالا که این دو تا منبر تعارضه شما ترجیح بدید خب میخندن بهشو میگن کدومیش درست کونی میش باطله شما در کلام خودتون که دیگه ترجیح معرض باشه توجه نشده وقتی از شما سوال میکنن مثلا میگن آ اون نوار نه مجعوله بعضیاشون توش دستکاری کردن یا بله این نوار مال مثلا پنج سال قبل اعتقاد من این بود بعد برگشتم فرم نمشته بود میکنه آیا معقول شما در کلام خودتون تا عارض فرز بکنیم و در کلام خودتون ترجیب بدیم تصور بکنیم خب وقتی عمر ابن همزره یه از شما دو تا رویت آمده میشه امام ساده سرات خودشون که ترجیح. تصور نشده در کلامات و ولذا هم های ازهاب ما سه مربون سرمرزه اصلا قلا با حجیت نبودن تاارز تون کلا قبول ند و مثل هم که تا آرز قبول میکنه از راهای های وارد شده اصلا این بحث رو با اوم نهنده رو نهندهره و اخبار الژی رو واردرز نمیشن چون این از اخبار علاجی تاارو ن این فهم است که برها شده بعد از اینکه علامه کلمات اهل شد ب اهلزشون نه تا آارز چرا؟ چون چراتون اهرسن در مقابل دو تا حدیث سر تهی از رسوله رو چکار کن راست این تاارو مگرس اصلا قابل به بحث خبر عقل دقت فرمودید این یکی از مشکلات کاره اصلا نحوه بحث ما کل در روایاتی که ما دارین در اخبار الیجی این اسباب اشتباه بود جب الله و کسر و تمیز اصلا معنا نداره به امام صادق دو سه حدیث از شما چی کار بکنیم امام بگه هم این حجت هم اون حجت روز ترجیح بده مثلا ترجیح بده به شهرت مثلا به واسه این اصلا عقلایی نیست کلامی خیر و راشب خب امام صادق چی میخوام بگم میخوام اینکه یعنی همین سرگردان میونه به دنبال وجود خب داره از امام میپرسه من میشم بله من گفتم این مطلبی که تو میگی من چون میدونم در مدینه هستم شما در کوفه هستی اولا ببین مثلا مال منه یا نه معیارش اینه و کسی که نعرو کرده یک مطلبه 5 نفر ده نفر یکی نعرو یه نفر وارد چیز دیگه نعرو شده خب اون نفر وارد اشتباه کرده حق با اون هست این خود بمشت عربین اصحابه و دع شازن نادر فین المجمل لاره بدی معنش چیه ترجمه این ترجمه اون باطله اون اشتباه نقل کرده یه نفر نعرو کرد 10 نفر دقت بکنید این درسته اون باطله فین المجمل خیلی واژه لا این درسته اون یکی باطله نه ترجیه به شعرته ترجیه من بحبید. اصلا معناه داره کسی در کلام خودش ترجیح بگه به طرف مقابل بگه ترجیح بکن شما همین کار بکنی در زندگی خودتون میگه نه این بسا نواره بعد یکی جنگه یکی نوار دستاری کرد باز ترجیه چنیز این یا میگه بعد یک نوار مال پنج سال قبل اعتبادم این بود بعد برگشتنی نواره دو... اخیلی درست یا بحث این نوار اصلی من اشتباه کردم حق به اون نوار قبلیه که من حواسم پرت شده اشتباه کردم اون میگه این ترجیح نیست خب دقیقاً این تعارض نیست میگم دقت فرمایید این نه ترجیحه نه تعارض این بیان حجت ان الله و وقتی بیان الحجت ان الله شد اشتباه الحجت الله شد این اسم اصلا تعارض نیست پس اینه که ایشون اخبار الیجی رو هردن. روشن شد که اصولا ما چی؟ به نام اخبار الایاجی یعنی مراد اخباری که ظاهر به وارز و علت تعارض مستلح نیست تعارض مصطلح فرع حجیت تعبدی است امام نمیاد بفرماید شما حجیت تعبدی به هر دو کلام دارید یک مطلب رو ده نفر دارد چون کردن یک مطلب رو یک نفر شما تعبد دارید به حجیت هر دو این یکی مرجعه امان میخواد یه بفرمان هست میگن اگر یک مطلبی رو ده نفر نفر کردیم یک مثلا یکی هر همون ده که دهتا ال... از من شیندن نفر کرد اون یکی اشتباه کرده یا دو بخور دیاری شو با کرده فعندن خیلی واضحه فعندن مجمعه لارهی بفیم این که ده, ده نفر کردن این قابل قبوله این درست اون که یک نفر نرو کرده نمیشه قبولش کرد. اون درست اشتباه کرده، نه اینکه اونم حجت به این ترجیح داره آن تو زمین شما که اونم حجت اینم حجت این ترجیح داره اصلا این متقاهم عرفی نیست این کلام عرفی با این توضیح که من انسردم پس تمسک به اخباره اپیلوجییه انصافاً بسیار بسیار مشکل. اصلا نه که مشکله. اصلا ندارین هنگ کی مشکله. این قسم نمی‌دونم علاوه اخبار دیگه خود این ذراعاتو می‌خوام اونجیه این قسم. حالا اخبار که محتمله نه نیست این معما که ما میگه ما را در این است با باش این قسم تعبیر نیست. اگر این تعبیر رو کنید، شیخ سوسی نسبت به علماء به کار میبر بله امام باید به کلام خودش به کار برده خوب دقت بکنی امام برای کلام خوده آدم برای کلام خودش که ترجیح نمیده برای کلام خودشه حالا اگر برای کلام رسول الله هم بود یهتم ما اتازه نه شون ما اهلوی تو این رسول الله میدونه. لیکن یهتم من، معنی که چی شد؟ احل سنت نقشیدی که خودشون نسبت به رسول الله و احادیث داشتن دیدن خب درست هم هست؟ بحثی هم بحثم به نام تعارض مطلب کردن هم ترجیح؟ درست هم هست؟ اصحاب ما هم این روایت بوده حتیم بحث ترجیم رواتو نگه بردم هم نم درسته از ده از علامه که ایشون مباحث تعارض رو او برد از احل و احل سنت و مرجعات اصحاب به فکر افتادن که مثل همون از روایات ت خیال کرده این رو باید به درد مقام ترجیح میخوره موچنین صبح چی که باید؟ کار از خوده خرام کرده؟ درد برداشتن برای این که مثلا خیال کردن علامه یه مطالبینی رو سکنم راستم از من از کردم در کتاب احسان سندن نمیداری آدم رفتم. بالای 80 تومار از جهده کردن بدود 83 80 تومار از جهده یکتا ما آمیری من دیدن بقیه همه کتبشون به دقیق نشماردن این جاید که شماردن حوضه 83 تا یا 85 تا مرجعه هیچ کدوم از این مرجعهات منصوص نیستن خودشون قبول دارم اوقت هایی دقیقش کردن یه مغزارشان در کلمات علاوه آمد دقیق میکنید بعد بنا شد که این مرجعهاتو از روایت میگیرن که مثلا خیلی تلام تلام به اصول سلمی نجید تو روایات تا فوق‌العاده اصول اصولی ما مثل برای شهریار میگن مرجعیات منصوبه مرجعات غیر که تو مرجعات زیاد بود اون 4 5 تایی که تو روایت‌ها آماده کردن منصوبه برای فکر کردن غیر منسوسه آیا تذیه بکنیم آیا تذیه نکنیم این بحث ها رو مطرح کردن اصلا معلوم شد ریشه بحث غلطه اصلا بحث مرجع ما رو میگن منصوب یا غیر منسوس بشه اصلا این بحث نروجه کل این میشه بحث, بحث؟ بی غیر متقابل این را حتماً تصدیق و هم میگم امام باقر من گفتم برای تقییمم نه امام میگه ببین قبول نکنیم چون من اصل لزوا احادیث تقییه لازمی تو ما معارضم باشه خوب دقت بکنید این معنای کلام ما اگر شما تقییه مرجع رو مرجعی غیر گرفتید بعدا شو تعارضه اما رو کلام ما لازم نیست وارض باشه حدیث تقییه حجت نیست و تعارض هم نباشه نمیخوام دقت کنیم در نماز معتبره داره امام به ابدی دوزا ذلاره میگه ما سمه احتمل مایوش به عقول الناصیه تقیه ایشان معارض دل معارض هم تقیات لازم اون که از تقیه باشه دل معارض معارض هم نشه بحث تعارض نیست بحث بودجیت و لا بودجیته ما سمه احتمل مایوش به عقول الناصیه تقیه بحث و لازم عرض مثل در کپایی آمده که ترجیح به مخالفت تقییه این معیار و هستن به موافقت کتاب معیار و حجییت هست بحث مرجعیت نیست جد و مقدمات حجییت هست و درست هم هست اصل این مطلب درست تشکیف حجیت لا حجیت تشکیف حجیت حجیت حجیت که این حجیت نیست نه که هر دو بیا ترجیح بیاد بده چرا الان فقط خبر یا نه؟ نه. خب چیزی با حجت ها حجیت با شواهد واقعیه. میگه در نفر در مقابل یک امام ده ده در مقابل 9 نفر حوزوند رسولی که باطل خیلی ای نمیاد نیست یه هر دو حجیتن خوب دقت بکنید. نمیخواد بگی هر دو حجیتن یکی رو ترجیح بده. این کلام خود امامه امام در مدینه است. نا تصور نگیرید. امام در مدینه هن. کلام در کوفه نقل شده. می‌گوا تو کوفه از شما دو جور نامه دادم. ندوق دقت بکنی. امام می‌فرمایند بله یعنی امام نمیگه اشتباه کرده. هم چیزی نمیشه. قبول میکنه امام میگه بله این مطلب هاشما میدونن. با از من دو جور دست کوفه نامه نوشتم. رو که مشهور اصحاب گفتن اون که یه نفر تنها میگه نامه اون درسته اشتباه کرده. باسلعه اون باسلعه. و رضا با. عمر بن حنبل میگه هر دو مشهورند. یکی پنج تا میذارم پنج تا اونورا. اینجا رو چی میگی؟ دقت بکور. اینجا رو چی میگی؟ امام مساله تغییر مذهب، بله درست، یعنی امام میخواد بگه برا درست، اینم امکان داره. بلازا ما توضیح داریم، وقتی که امام میاد جواب میده، یعنی میخواد بگه امکان داره. یعنی خود امام میدونه که گاهی یک رو پنج تا گفته، خلافش هم به پنج رو گفته. اینو میدونه امام. لکن میگه نگاه نگاهون تغییره. بحث تغییر مذهب، موافقت با دولت، خب دولت از نظام اونجوری میگه خب شما در تقی چه کو میگیرن روعات میکنن روایاتشون یا نظام حاکم امام بر نظام حاکم بعد میگه آقا این دو تا اوقات هر دو مشهورن هر دو سنده هر دو کذاب نه، هر دو مشهورن یکی هم مطابق با یک از در علمای عامه هم مطابق با یک یعنی یکی مخاطب امام رو دایره تنگ بکنه اینجا چه کار وقتی میاد به این دایره اخیر امام برعلان که هر حتی آقای اینه این گرفتن منه توقف یعنی اگر مراجعات منصوصه ای که امام فرمدن نبود توقف ترجم نشده امام میخواد این چین چیزی نیست از توقف این مال من نیست این کار رو من نکردم اگر چنین چیزی پیش آمد این موردیه به خودم مراجعه کن تو توجیح بکنم پس موارد کلیست یک مورد موردیه که تحت مثبت تلوقع نیست امام کلام خودش من رو کامل کردن خودش رو اما که امام هیچ چیزی نیست که یک مطلبی رو من به 5 شو گفته باشن. به 5 شنبه هم گفته باشن در هر هم احتمال طبیعی باشه در هر احتمال عدم طبیعی باشه هر هم با ظاهر کتاب بخوره هر هم با ظاهر سنت بگیره این چیزی نیستم هم بکنم اذن فرج حد فاس القائم امامت این مورال جدی اینه که نیست این چیزی اگر موردی پیش آمد این به من بگو تا من ببینم او چی شده این مسئله لا همچی چیزی پیش من نیست بله این من قبول دارم گاه دا یک مسئله ده نفر گفتن یه مسئله یک این قبول دارم گاه دا یه حربشون بگن احتمال تقییه هست، احتمال مواقع کتاب، حالا اون به چه مهمه این مواقع به کتاب سنت، اون باشی جای خودشون، اونجا نسخم مختلف، نسخات ارواد اومارم نهندله که من اونها رو بخش بشم. پس بنابراین ما چیزی به نام اخبار علاجیه و ترجیح و ترجیح منصوص و غیر منصوص و به نظر ما تمام این مقالب است صحیحش همون رجوع به طریقه خودماست. این بعد از العلامه قدس الله نقصه چون مقداری از ترجیحات از کتب اهل سنت وارد شد اینا تری کردن با این روات موجود اینا جور بکنن اصل مطلب درست نبود این راجبی این درس است از طایفه ثانیه الا اخبار العامره به رجل و اشخاص معینین من الروات کفاوله اظهار تهذیب و دستور مورد دیگه اینا هم جواب این درسته ایشون از 4 تا کرده ما تواتری که آی بیش از چهار طایفه از ذکرید این مطلب درسته این مطلب توارف بکنه از کل این افرادی که این او دارن برای بسیار جلوغه دارن بزرگوارن و یکی در بزرگواری اونا ارجاع احمه به اونها دیگر این بزرگوارن نمیخواد تصور بشه که احمه و سلام به اونها ارجاع دارن اما این به درد رواجات موجود نمیخوره کما و جدن و یه نکته دیگر داره که بعد عرض میکنم ایش عطائف و تا و رجوع دار هننا این داره این عبارت هست البته خود این رواسن زید حالا بعضی از رواس دیگه نرم میکنه کویجه نرم میکنه این سند ضعیفه و ثقاتونا یعنی وکلا و قدر در محق قرنانی را حاضر تارفه به نظر که فواعده اصول نبود تواطره راکوی هست کردم بین فواعده و این, این کتاب بین نقلهای خویی گایی فرد هست و ها بعیدون جدن بعیدون این تحبیر چیه یکیه لاعظه لحظه همی که اصلا بیشتر نه تواطر که یکیه اصلا یکیه خبر ضعیب این ما این بله یه تحبیر دیگه داریم و عل امر ابن موسى ترسان خص معله وما لفه ما فانه ثقه مطمئن این دارید اون اثر کردین اون روایت صحیح کاملا صحیح سایه دارید اون روایت توضیح دادین اونم عرض کردیم اون تعبیر ثقه هم مراد به اصطلاح وکیل از طرف امام است که جعل و نصب داره وکالت کردند. این دو تا یکی از اهل بیت رسول نظر رحمت ثقه اون که رو جو پس کردیم سند که معتبر در کتاب کشی آمده قابل قبول دو معنی دیگه هم داره که توش نداری تعبیر فقط میشه ببینم سلام داره وجود بکنه گفتن بله ثقتون نداره عقل همه علم دینی داره ثقتش نداره و اونجا هم وثاقت مراد وثاقت به به لالهاظ مبانی علمی فقاهت و اشتهاد صحیح یعنی ایشون فقیه واقعا فقیه و با این که ایشون متاثر از قیاس و درست نیست پس این علی اخبار که به رطوع استقاض ما کاملا توضیح دادیم هیچ کدومش رفتی به خبرواهی نداره کلن این هم ما سالسه اما از طایفه رابع الاخبار و الامره به حفظ روایات و از ها و زبطه ها و احتمام به شعنه ها على مختلفه راسته به علسنت مختلف ارجاع به کتب هست این هست این اخبار و به حفظ روایات هست و ذکر به صاحب و وسائب باب هشت از عبواب کتاب قضا اولی کتاب قضا عبواب اول کتاب قضا باب هشت از کردیمشون بابی رو قرار داده در باب حجید خبر این توضیح دادیم و از کردیم مرموم آی برو جردی بیش از تار وسائل عوردن تو جردی یک جامل احادیست که ما کاملش رو خوندیم هست این رواید هست باست قابل انکار نیست و رجوع به اینها جای بخش نداره نتاکر زیاد روایاته زیاده, روایات زیاده کل واحده شد اشکال داشته و از این اجمالا از این روایات در میاد هجیت خبر اجمالا این انصافا باید قبول بکن در مقابل کسانی که اصلا اصل هجیت قبول نداشته گذن ما وصوق به حفظ پیلا لیکن این روایات زیاده و از این روایات اجمالا در میاد البته این افرادی که مثلا کتب رو نوشته یا افرادی که با ايمان به امام اونا گفتن که مثلا شما حدیث بگید یا گفته بهشون مراجعه کنی این افراد همشون بزرگان هستند هم. موجرد راوی عادی نیست از زبان و القدر از اینو شن لكن حس مطلب اجمالا هست و بعد باز یک صحبت در آخر می کنیم که نشد تکمیلی بشه به بین در استدلال به عادل اخبار مطرح کردن على بله همون بحث معروف که باید این احوال قطعی میشه باید بشه باید نمیشه بهش تمسا کرد از کردید این اشکال به روایات در باب حجیت خبر تازگی نداره تو کتاب فسرازی هم آمده صده سال قبل از کتاب فدیه ما و اصولی ما اهل سنت متعرضی این شده که نمیشه به روایات تمسا کرد در باب حجیت روایات باز هم هست بیگه نمیخواد ولی ازا باید تو تواتر ثابت بشه تا قطعی بشه بعد اشون توضیح میزن که من دیروز ارز کرده است تواتر سه قسم کن و معنوی و اجمالی بعد میگه که و انترال محقق و که دیروزم خونده میبارد که تواتر از تواتر اجمالی زنگه هاشم از اجادتقیدات برمکه ارز کردم در اجادتقیدات دایی مطالب رو مرمون نائن استادم که خلافش تو تواتر اصول هست همون دیروز عرض کردم. و علا غیر از اینی که کتاب فوادر اصول در خوضه ها مشغول مشهورتر است حتی مرحوم قای عراقی قدس الله نفسه که حاشیهی نوشتن بر کلمات ناینی بر همون کتاب فوادر اصول نوشته این حاشیه اخیراً اون چاپ قبلی فوادر اصول که در نجفون حاشیه مرحوم عراقی ند داشت کاری عراقی این چاپی که در کردن جام درسی این تعلیقات مرحوم عراقی داره و خیلی نافع تعلیقات یعنی واقعاً و خدا رحمت کنه علامه بوخنوزی میفرمونه که وقتی ایشون نوشین تراث پخش شد، مدار شهر مرحوم اخیراوی پای نوصله خود در ادای مرحوم لائینی میدونه که مثلا این طنواز حاشیه بر کلمات شاگرد بنام میذاره. البته خب مراد شاگرد نبوده، مراد به نظر به استاد بود نه نظر طریحیت داشته شاگرد موضوعی داشته. الان که شماسان انصافا حواشی مفیدی و البته من سازگی ملل تازگی تا چند ساله چیز عجیبی که پیدا کردم همه حواشی به اینها توی نهایت الافکار که تقریر مرحوم عاشانقی بروجردی است خط اساساً واسه اونجا آمده احتمالاً ایشون از استادش ایرته باش از مرحوم آزیا لان خیلی بعیده که مرحوم های عاشانقی نوشتن بعد مرحوم آزیان رو تو حاشیه تواید بوده باشه علاوه حال مقدار زیادی رو من نگاه کردم به عین الفاظ این حواشی در نهایت میاد باید یه تقریر تو درس فرموده باشند نمی دونم چی طور شده علاهیا حاله اشغالات مرقوم آسیا بر مملکه‌ای در اونجا هم آمده و من که هر من حق اجمالی رو یک توزی دادم بعدم رد کردم و حقا همین تواصل اجمالی قابل مناقش نیست انصافا تواصل اجمالی صابه که از کل در تواصل هستم خود دایره تواصل اجمالی ولیم حالا مثلا تو دوره آخرش بحث شوخی کردم مثلا. علايه هم همه بریم جمله دیگه نمیخونن خدا انوارچه هر چیزی که پایدی نداره خیلی خیلی لا مجاله ل انکاره بعد الا اون نکته اساسی اینجاست اون اصل مطلب اینه چون ما به تواصل اجمالی شدی باید, باید اون قدر متقن یعنی معیار حجیه چیه البته مجموعه های کوی فقط معیار نمیشن ایشون با این نکته رو اضافه میکردن بل. و مختفت هست ولی که تواثر اجمالی قیلقا بزه و محتضا البته ایشون میار رو آورده ما یه چیزی هم بعد اضافه میکنیم که ایشارا توضیحش کامل بشه و محتضا اگر بخویم تواثر اجمالی رو کنیم نتیجه گیری نهایی چی جوریه چه خبری حجته محسوسا از فردیم بعد از این از درمه هر مرحوم علامه حدیث رو به چهار قسم تقسیم کرد این بحث مطرح شد که این روایات این چند قسمونی چهار قسم رو میگیره مثلا بعضی گفتن چهار قسم یه اینجور صحیحه میگیره حسن حسن رواید ایست که ایکی از رواتش یا همه رواتش امامی باشه اما توصیق نداشته باشن باید مرد داشته باشن توصیق نداشت موسق رو هم میگیره که اصلاح حدیث نیست که راویش خیره امامی باشه حالا قطعی باشه زیدی باشه سنی باشه هرچی باشه سکره باشه و ضعیف منجبر رو میگیره بعضی هم از زمان قرآن هم در علامه مجلسی یه قسم پنجامی هم اضافه هم قوی اون هم بحث که این قوی قسم مستقل یا نه نمیخواب بارد این بحث ها چون خیلی ارزش علمی ندن این بحث مطرح شده. اده ایمون اتقلیدن اگر ما تواطر اشمالی رو قبول میکنیم قدر محسیدن و محسیدن از خبر صحیحه یعنی اون خبری که جمعی رواسش عدل و امانی باشه روشتر این همون بودی که هاشیه مرمو آزیان خوندی از آخر حاشیه بری از آزیان مرمو نایدی بسان قدر محسیدنش خبر منصوبون بهه مراد از خبر موثقون به در اصطلاحیشون ایشون که راویث باشه اصطلاح خبر موثقون به خود ما در جایی بخوام اینکه انسان وصول به خبره اطمینان ظاهرا مراد مرحوم آقای این نیست ظاهرا مراد ایشان خبر ثقه است ولو امامی نباشه و آیه خویه مبناشون حیده ایشون دستور مقتضا الانتظار به حجیت الاخص منها المشغول على جميع الخصوصيات المذكوره فهي كبوجيه الكبر الواجذ لجميع تلك الخصوصيات به اعتبار كون هي قدر المتيقن من هذه الاحوال الداله البته این اگر بگید قدر متقن و سیقنا باشه علوی دیری که شیعه وجه امامی باشه عذ وجه باش چین باشه لاغری بلکه بالاتر از خطاب مشهور باشه خیلی هیولپرون باشه بزنید این مردم گفتن که ایشون فرنده خطی نمیشه ودکر المحت قنائنی امنال اخست منها ماهو دل علا حجیت خبر سخه هم ترسیم در کتاب فواهد الاصول الخبر الموصوبه به نوشته درکه ظاهرن مرادشون یعنی به یعنی وزاقه فبناعن علا تحقق تواد بلذاب تسبت و حجیت خبر موسوقه به ظاهرن و وفیه ان نظار جمله منها اعتبار و اداله که قولیه علیه السلام فل اخبار الالاجیه خود به قول اعدل همه خیلی عجیب از مرمون استاد این خود به اعدل همه در هم مربوعه زراره آمده که هیچ حجیت نرست خیلیه <laughs> فل اخبار الالاجیه یک جونی فل اخبار الالاجیه فرمانه که در تمام رواد الالاجیه تعبیر وارد شده در هیچ کدوم از اوها وارد نشده خود به قول اعدل همه الا در اون مرقوه ذراره پیش ما بدیل بطلان خطی و فساد ولی ولزا اصلا تو بحث اصول متعرض نمیشیم چون فاصله معنی باطل محضب. این هم مالی اینجا دقت بکنی از مستدرک ابواب از مستدرک استخراج کردن چون اون مرقوه ذراره تو مستدرک آمده تو ورثائل نه و وقتی علی اسلام علی که زکریه ابن ادم المامون علی و دنیا المامون علی الدين بالاتر از اداره مضافا به اینکه و وکیل امام بوده و بعض ظاهر را در اعتبار الوثاقه که قولی حساب نه بعد ما قال اف السائل اف دستور نظران مصباحه اقول ناقل معالم دین نام نه... نه. نه این متن نیست نه حالا ایشون بمذون نه این عذری سه متن داره در دو متنش این لغزه نی اومده تو یکیش آمده و به قرینه معالم دین اصلا رابطه به وجود خبر واحد نداره اینم مال و بعض ها زایران فی اعتبار کنهی همامی یا نیزن که قولی لا السلام لاؤزالعهد فی تشکیفی ما یرویه انا ثبات انا. به اضافت ثبات لازم دیاره متکلل زانگراتون فی اندال مراد منها کن من من و راویون اهل بلایه منهم این رواست هم از حدیث واحد و سندش هم ضعیفه ربطی هم به خبر واحد نداره منبوطه به وکلای حضرته. چون بالا استاد هم, هم این داره حین وعارف او به و مححمل یاقا الیت این نفاغ و مححملله او ما رو با کلاس سر. پس این بهوارد هم رفی با, با خبر نداره. من مطالب اندن می تا معلوم بشه که واقعا خیلی ما با مشکلات رو گردیم باید یک فکر بکنیم برای مطالب علمیمون که اینها یا ریشه ندارن یا اصلا غفتی ندارن بله و هیش رو امن المرادون اخبار فقیف الاخوار و المعنه اللغوی مالا و المصطلح علیه اند المحدثی البته اند المحدثی امن ده از درایه به اصطلاح دیوود اشاره کردیم که در کلمه سقید مثلا در مثل نجاشی چند تا مضمون داره دیگه توضیح تکران په این هم یطلقون از رعد امامی العد راسته امامی عد میگن اضافات که هم گفتن و من ها اطلاق و مثل اسلام کل علا کل این اطلاق زنی جمعنی استعمال ها نه اطلاق ها قول تقیی چونگه اطلاق ها قول محل اطلاق این اسمه ها بله فن نسبتو بینال آده و الموسیق به یا الاموم منوجه. یعنی مورد اصطقه اصطقه ای که ضابط باشه اصطقه ای ضابط نسبتو که از که ضابط با عدل اموم خصوی منوج می روشن. بعد ن... نعم ذکر صاحب الكفایی اندال متعقب این حاضر اخبار به امکان خصوص خبر صحی ان... الا ان او بی جملتها خبران ها، یه دل علی حجیت خبر موسط فتسبت و بیو حجیت خبر سغیر این لمیقون عادلن آی خودی فرمون ما ذکره هم متینون و لعل مراده هم من خبر صحیح ادار علی حجیت خبر سغیر قول و علیه السلام نعم بعد ما قال سائل افیونس بن عبدالرحمن سغتون نعم و معالم دیو ناعم فی امن ظاهره این همین استدلال مرحوم صاحب مرموم محقق ناینی هم بود کون حجیت خبر سقه مفروغن انها بین الی امام و ساین و اندر سوال نازرانه در سقران فقط و جوابش هم همین الان هست خبر رفتی به حجیت خبر سقه نداره تا حالا این استظهارها رو به خود بفرمیم این راجع به کل کلمات مرموم استاد عدسال دعا سر البته خود ایشون ظاهرش اینه که میگه خبر سره، البته اول ایوازش مشه بود که خبر صحیح یعنی امامیه عرجوش. باکن چون بعد ایشون مهم ایناست که سیره قائم است. سیره اوغلا در خبر سره و این سیره از طرف امضا شده پس خبر سره حجت و لذا به اصطلاح اول الاصطلاح پیش مرحوم استاد خبر صحیح و موثث حجت. باکن ادعی از علمای ما خب برد که کسانی که ظاهراتا موقعا در سر در زحمت میوزم صاحب مداره خصوص خبر صحیح خود جد میدونه همدهی از, از قدما ما بعد از علامه صحیح و حسن رو خود جد میدونه از داریم هم همین چارگست روی که از کردم صحیح و حسن و موثل و ضعیف منجبره و عمل این چارگست این یکی از مسائل اساسی پس یک بحث این از که متحسل از این ادله چیه و من سابقا هم اشارات کردیم حالا اخیرا اخیرا شدم سوال توضیح دیم. لیکن به نظر ما نکته مهمتر اینه که باید ببینیم این روایات علاکنده به جهل و حجیت برای خبر که آنقال هستند باید بفرم این جهل و حجیت به چه نحره مثلا آیا به نحوه تکمیل کشف که مبنای خود استادم حضران راهی هم هست من مبنای جله بدل که شاید می شونی ها بشن تو ما ها مدهی قاعد بشن. به معنی تعذیر و تنجیز تمام گذاره به جمعه یعنی یا معنی مسلحه سلوکیه هست پس این نکته به یک نقطه مهم می ترجمم هم, هم تو استاد در اینجا متعرض نشدن اون ملیاره یعنی نکتهی جعل حجیت حجیت چیه انصافش چون معلوم نایگه خیلی ترکیب داشت ما خیلی, خیلی ترکیب داشت بر مسئله لاغذ رهد موالینافر تشکیفی ما یروی همناس قاطنان تأکیل فرمونای نوم آقای بوجود ازیاد میگفتن اگر معیار اون حدیث باشه من صابرم از کردم اون حدیث با معیار به اصطلاح تصمیم کش بهتر میکنه چون تصمیم کشف معنیش چیه؟ معنیش است که خبر خودش کاشف نادسه شعره اونه خاشو به تانوش کرد. نستمی کسیم داریم. وقتی شعره میگه لاعذر لحظه اونه از تشکیل. شک رو بردار. شک نکنیم. یعنی خبر سقه کامه 80 درصد. چرا شک مونه 20 درصد. شعره میگه 20 درصد برداریم. شک نکنیم. خودت بخط بکنیم. یه سوش تطور میکرد کنیم. وقتی 20 درصد برداریم. یعنی چیه یکی یعنی 100 درصد. لذا انتحابا اگر ما باشیم و این موقت رو نمروم نایمی جمعه متعرض کردن نمروم اصداد همیشه بحث علمی رو سبقه علمی شراموش نشه از این وقایات اصلا معنی حجیه چی در میان یک معنی این اینه احتمال اگر باشه این است که تشکیم کشفه از کردن خود نایمی برموم آزیا در که های تذیر و تنجیزه در مون این آزیا تصمیر کشم استال هم تصمیرکشیم. مون میشهه سال زادش مثل از سلوکی است که همین مدار ما قبول با توضیاتزی گالش داشتیم بیاید سکار میخواه بکنیم. ال یا حاله نوبی۱ از ه سنت نه و در تا تو ماه هم مثلا اگه دلیل ما این باشه هفت یونس و ن دورحمان سهقطون آ خدا انها ما عالم بینیخور دقت بکنیمسهقط؟ آه. این ظاهرش اینه که کلام یونست نظرانمان معالمه دینه ظاهرش اینه این به جعلی بدن نزدیک سره پس این بستم در حاشه کتاب اضافه رو فرمید که اگر این روایات رو ما قبول کردیم روشن شد اصلا معنای حجید از روایات چی در میاد اگر لاغذ لحظه, لحظه باشه معنای حجید با تکیم کش میخوره که من اون ناییم فرمونه اگر آخدا و انهما آمل دینی باشه یا مثلا حضرت کتاب یونس همه حاضر دینی و دین خود آبایی حاضر دینی اگر حاضر دینی باشه تمسطه ما با اون روایات باشه انصافت اون روایات با مسئله جعل بدل و جعل مماسل بهتر میاد یعنی ما میگه مثل کتاب این دین منه یعنی میشون واقعی اون با چهر بدل و جهر مماسل یعنی شاره آماده چهر کرده اون چیزی که در کتاب یونسو نظر رحمان دین و لاهه خوده فکر دینی و دین و آبای اگر این باشه این با مسئله جهر بدن و جهر مماسل که بگیم جهر حفن ظاهری شده لاعقل حالا این واقعی نباشه ظاهری شده با او بهتر تو در می و این یک مشکل دیگه در این روایات که از این روایات اون نقطه فنی حجیت در نمی آن. چون روایات از مختلفی مختلفه ای این نقطه دیگری ای که باید به اینها اضافه بشن و دقیق بفهمنید یه مطلبی هست این کلن باید ببینید ارجاعاتی که در روایات هست در این مجبوعه ای روایات که ارجاع به اشخاص هست ارجاع به کتب هست ارجاع به روایات هست حتا بعضش از کردیم پدیسان تأخیب بود من صادق یعنی خود امام ارجاع به حکمه هست اونی که ما الان من حیث المجموع از این روای در میارید که در مجموعه این روایات امام علیه السلام در مجموعه روای هست با همه را با هم جمع بکنیم که ارجاع همه ی باشه من حیث المجموع میشه سه نکته در نظر گرفته شده یک دکتر این است که مسئله کلامی است رجوع به قول اهل بیت یعنی اگر فقیه عام است فرض شازان از مثل اهالی اح... سنت نمود. اون حجیت نداره فرض می شازان در جای که از امام داره یک مسئله کلامی دو مسئله اصولی حجیت خبر ثقه این با شأن همین که ما علام میکنه میسازد سه مسئله باز حالا فقری یا اصولی حجیت قول احل خبره این سه تا مسئله است. اون که الان مورد بحث ما فقط حجیت خبرواهده که بحث است، اما تو این مجموع ارباییات سه نقطه است، نه یک نقطه یکیش اینه که ارجاع با به احل بیت بشه غیر احل بیت باطله. دو ارجاع بشه با بزرگان اصحاب که فقه ها هم هستن موجرد این نیست که بر حدیثا رو نقل بکنه. من فرض کنم مثلا یک بقالی بره کتاب کافی رو بگیره و ب سوال بگه چند تاشو انتخاب بکنه نقل کنه. به این مراد که بره. علی که ذکر گیرند آدم عالم عرب دنیا اذا عرفت حدیثا علی که به از ظالم علی که به اصلی علی که بگی زینس اینا خودشون مقامات علمی هم اهل خبره هستن. سه مسئله به اصطلاح اهل خبره بودن دو و مجرد راوی بودن سه پس اگر ما بنامون بیدیم باشه به مجموعه روایات به ماهی مجموعه عمل بکنیم باید خبری رو با این اوصاب قبول بکنیم یعنی سه تا بحث مذارب غیر خبر سه تا بحث درش تاثیر داره یکی اینکه از اهل بیت باشه اجلا گفته باشن و روماس سقاط باشن راویشم سقال به اصطلاح عدل باشه یعنی سقه باشه اشتباه نه سه تا نکته هست چون سه نکته هست این به درد حجید در خبر سرف در خبر سر فقط طریبیت به سرفه نه خبرویت درش مطرحه نه مسئله اسمت دقیقی میفهمید پس بنابراین این حالا چون وقت همون شدید این نکتری که خیلی عشبازیگم هم شدید